أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأتيبين الأنجرين سيما بغية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرعوا إلى الله أسعد الله وعيامنا وعيامكم إيد بزرق قربان أز أعياد جهان إسلام است نه بار در این نه قنوط خدا را سوگند دادیم به این روزی که ایده جهان اسلام است اختصاص به هیچ گروه و ملتی ندارد و خصیصه امروز که جعلته للمسلمین ایدا این هستی یک شرفی و کرامتی برای پیامبر اسلام و اهل بیت اوست. قرآن کریم چنین دوزی را برای میلاد هیچ کسی که شخص مطرح باشد اید قرار نداد. چهارده معصوم به دنیا آمدن. روز تولد اونها اید رسمی ما نیست. البته مسئول میشیم تبریش میگیم. عید رسمی در اسلام ایدیست که برنامه داشته باشد. این نماز عید قربان و نماز عید فید در زمان حضور و ظهور امام معصوم واجب است مثل نماز جمعه است مثل نماز زوره مستحب نیست در زمان قیبت امام مستحب است مثل این است وگرانه یعنی وقتی امام حاضر و ظاهر باشه این نماز اید قربان نماز اید فطر راجب است نماز ستون دین است قرآن برای روزهای رسمی برنامه دارد میگه این ستون رو بلند کنید این علم بلند کنید برای روزهای غیر رسمی که برنامه ندارد چهارده معصوم به دنیا آمدند برای هیچ کدام اید قرار نداد چون دین روی شخص نیست. البته ما در نوزا خوشحال بشیم فیدی که تبریش میگی. اما نماز داشته باشه اینچنین نیست. قربانی داشته باشه اینچنین نیست. زکات فیتر داشته باشه اینچنین نیست. در اید فیتر برنامه رسمی است به نام نماز اید فیتر که اگر امام حاضر و ظاهر باشد چند نماز واجب است چه اینکه زکات فطر واجب است در روز عید قربان برای گروهی که در سرزمین مکه هستند قربانی واجب است برای ماها که در مکه نیستیم قربانی مستحب است البته برای اونها غیر از هدیه عذیه هم هست و زمانش چهار روز است. یعنی دهم ده و یازده و دوازده و سیزده میتوانند ازییه یعنی قربانی کنند. ما زمان سه روز است. ده و یازده و دوازده این سه روز میتوانیم قربانی بکنیم. اختصاصی به روز دهم ده ندارن در روز دهم برای اینکه حاجیان توفیق پیدا کرده عمل ایوانیشون را انجام دادم. گفتن حالا که بندگیتون به پایان رسید، از لباس احرام بیرون بیایید، اعمالتون را انجام دادید، با عید بگیرید. در روز شوال که بندگیمون به پایان میرسد، خدا را شاکریم که یک ماه دستور را او را انجام دادیم، میگن حالا که دستورتون را انجام دادید، عید شماست. پس اید فیس برای آن است که ما فراغت پیدا کردیم وظیفه و بندگیمون را انجام دادیم. اید قربان برای است که ما فراغت پیدا کردیم بندگیمون را انجام دادیم. این عظمت دین برای همین است که روی قرآن و روی معارفت که می کند. نه روی شخص بنابراین سر این که میلاد این چهارده معصوم را اسلام اید قرار نداد اما روز اید قربان را روز اید فیص را اید قرار داد برای آنستی به مکتب احترام میکنه مطلب بعدی است که نماز ستون دینه شما در هیچ جای قرآن یا در روایات نمیبینید که به ما دستور بدن بگن نماز بخانی چرا؟ برای اینکه خود دین گفته از سلاط تو عمود و دین. نماز ستون دینه. اگر خدای کرده گفته بود نماز بخونید معلومش این دین دین حکیمانه نیست. چون ستون رو نمیخونه، ستون رو اقامه میکنن. همه جای قرآن این است که اقیم و صلات، یقیم و صلات، مقیمون از سلاط تو روایات همینه. اگر یه جا گفته بود نماز بخونید، نسان رو گفت این دین حکیمانه نیست. برای که از یه طرف میگه نه از و عمود و دین از طرف میگه نماز بخورید مگه ستون میخونن ستون رو اقامه میکنن این که مشکل ما با نماز حل نمیشه برای که ما نماز میخونیم نه نماز اقامه کنیم یعنی اونی که دین به ما گفته نمیکنی. چون دین گفته نماز جلو هر بدی رو میگیره ما با داشتن نماز گرفتار خیلی از بدی هستیم برای اینکه ما نماز میخونیم نه نماز رو اقامه کنیم. شما هیچ آیه شنیدید هیچ روایت شنیدی که ما بگن نماز بخون اگر گفته بود نماز بخون که دین دین حکیمانو نبود همه جای قرآن یغیمونه، اقیم سلاط لذکری ما مشکلمونه اینه که نماز میخونیم اونی که قرآن گفته عمل نمی کنیم. لذا با نماز هست جامعه مشکلاتی فراوانی دارد. اگر این نماز را اقامه کنیم، ستون را اقامه کنیم، الان ایام حج وجود و بارک امیر المؤمنین ای که برای مسئول رسمی مکه نوشت امود اقم الحج للاغس، حج را اقامه کن. ما در زیارست نامه عیم برای و سلام بگیم اشهد و اندکت اغمت السلاح اغمت الحج نداریم برای که حکومت دست اینها نبود تا بتوانن حج را اقامه کنن خودشون وجود باره که امام چندین بار پیاده مکه رفت اما اون اقامه حج نیست حجی که درش برایت از مشربه نیست برایت از ملحدی نیست انزجار از سهیونیست نیست اون حج اقامه شده نیست و اون اقامه الحج لله چون اعیمه به این فرصت نرسیدن ما در زیارت های این ها فقط نگیم اشهد و انکرد اغم تسلا تس و آتیت از زکا دیگه اغم تلحج نداریم بنابراین ما موظفیم نماز را اقامه کنیم و نماز ستون دیل ماست با همین کار هم مشکل ما حل می شود مطلب دیگر آن است که قرآن کریم هم برهان قام شرده که انسان الا و باید به یک معبد و معبودی رو کند هم منافع نماز کرده. وقتی میبیند جامعه گاهی گوش میدن گاهی سح میکنن گاهی نسیا میکنن خدا با این شب دستور داده برهان قام شرده فواعد نماز قام شرده یازده بار قسم خورده پشت سر هم شبه کجا میری خدا طوری باشد که پشت سر هم مجبور بشه قسم بخوره قسم به آفتاب به کاری که آفتاب می کند قسم به ماه کاری که ماه می کند قسم به منطقه روشن روز قسم به منطقه تاریک شب قسم به آسمان و کسی که آسمان را آفرید قسم به زمین به کسی که زمین را آفرید قسم به جان آدمی کسی که جان آدم را مستور خلق کرد اگر کسی عمل صحیح بکند مقصد میرسد 11 یا 11 قسم خورد در این سوره و شمس و شمسه یک فزوها ها دا و با قسم دو تا قسم یاد کرد و قمره ازا تعالی و و نهاره ازا جلاها چار، و لیله ازا یقشاها پنج، و سماعه و ما بناها شش و هفت، و و ما تهاها هشت و و نفس و ما سواها ده و یازده، یازده بار قسم خورد، فرمود قد افله من زکاها، بعد از این یازده قسم، فرمود اگر کسی خودش رو پاک کند به مقصد رسیده. این خداست این نماز ایده قربان خب این همه دستورهایی که خدا داد راه های کرد اما معزاله یازده قسم می و قسم و قسم و قسم اگر کسی پاک باشد به مقصد می رسد چشمش پاک دستش پاک گوشش پاک شکمش پاک مالش پاک سفرش پاک این نماز ایده قربان برای همین این نماز ها برای همینه چی راه رفت مال حرام خور که به مقصد رسید که ما دومیش دو باشیم؟ این نظام را ذات اقدسهلا فرمود بعد بالا میاره. این دستگاه گوارش درون و بیرون ما مثل تنگ خالی نیست. این تنگ خالی حرفی برای گفتن ندارد. شما اصل بریزید نگه میدارد؟ سمم بریزید نگه میدارد؟ اما این روده و معده و دستگاه گوارش ما مثل این تنگ نیست. یه مختصر غذای مونده و سمی بشه بالا میاره. و این نظام این توره جامعه همین توره یه ذره اختلاسی، یه ذره نجومی بالا میاره. وقت آبرو میره، زندگی میره. قسم خورده خدا که فرمود به چی بعد دیگه مقسم بخورم؟ یه آسمانی هست تو، یه آفتابی هست تو، یه ماه هست تو، یه زمینی هست تو، یه روزی هست تو، یه شبی هست تو، یه جانی هست تو. یازده قسم خورد، این وابها همیشه وابق قسمه، و شمسه و زههها و القمر از آوتلاها و نهار از آوتجلها و لیل از آوتیکشها و سماوی و ما بناها، یا قسم خورد، قسم به قسم و قسم به قسم، اگر کسی پاک باشه و رومندانو زندگی میکنند، این دینه. ما کی عمل کردیم؟ که آب رو نبودیم و کی بیراه رفت که آبروش محفوظ بود این نماز بر همین این نماز های دو قربان برای همین بعد می این مشکل مشکل شما نیست تو سوره مبارکه اعلا که در رکت اول خونده شد با بعد این مشکل است این نهازال فسطحفه الاولا فسطحفه ابراهیم و موسا بل سرول للحیات الدنیا آخرتی و خ رو انهاظال پس و هر وقت داد اینها رو بینه تک میکنین که چجور میشه خدا مجبور بشه یاده قسم بخوره ب باید حرفهای منقطته. اگر لازم نبود ضرور که خدا قسم نمیخوره. برا به کار خودش تو بحث های قبلی هم بر توسید که قسم های خدا به بینه است. قسم بشر در معاشم غذاایی در مقابل بین است. یعنی اون کسی که مدعی است و شاهد بیاره او که منکر است دستش خالی او قسم میخوره وگرنه مدعی که دلیل داره شاهد داره البیغرتو علالمدعی ولی یمینو علامنکر اون کسی که مدعی است شاهد داره وقتی قسم نمیخوره قسم در محاکم قضایی در مقابل بینه است اما قسم های قرآن به است نه در قبال است اگر یک کسی نابینا باشه نمی نمیدونه که شبست یا روز شما بگوید قسم به این آفتاب که الان روزه شما به بیانه و به دلیل قسم خوردید نه به چیزی دیگر منطقه می بینه. شما که نمیگید به جان من قسم یا به قرآن قسم الان روزی که میگید به این آفتاب قسم روزه به دلیل قسم خوردید قسم های خدا در همه موارد به بیانه است. نه در قباره بیانه. با دلیل قسم نخوره. این نظم محیر العقول بیانه است. بنابراین این روز روز جهانی است. و عظمت این هم در خطبه دوم انشاءالله مشخص میشه و هم روز شرف و زخر و کرامت برای خاندان اسمت و تارت است. و قبل از آمدن به نمازی اید قربان مثل نماز اید فیر مستحب بود انسان اون دعا رو بخونه که خدای روز روزی ایده هر کس در روزی اید میره پیش بزرگی برای گرفتن جایزه من آمدم مسجد که از تو جایزه بگیرم از تو فیض بگیرم این دعا را گفتم خدای ما جای دیگه نرفتیم جای دیگه نیدیم رو زیاد به اخدم جایزه میخوام. پیش بزرگ میجازی بخوام. من آبرو میخوام، آبروی دنیا و آخرت میخوام. خیر خودم میخوام، خیر فرزندانم میخوام، خیر آل خودم میخوام. میخوام با شرف زندگی کنم. اون چه خیری که به اهل بهدادی به ما بده، اون چه بدی که از اینها دور داشی از ما دور میذار. اینا جایزه ماست، ایدی ماست. ما آمدیم تو خونه اینا میخوام بزنم. یعنی نیست نه بار آدم با خدا بکر همه بیدن جایی جایزه میکرد کدوم بچه بود که رفت بزرگش جایزه نگرف روزه این آمدیم یه جایزه بگیریم جایزه مایی راست اونی که به پیغمبر اولادش داده کم که نمیاده ما هم بده دیگه. ما میخوایم با آبرو در دنیا زندگی کنیم ما که مالو که بایه که خودت داری. در قرآن فرمود تمام ما را اقرب آیله من شما چیکار داری؟ فلون خرس قطبی نجس سلعین است یا حرام گوشت؟ من خلق کدم آیله من حالا قال الله این آیه شش سورهوده. فرمود حالا فلون خرس قطبی شش ماه میخوابه و حالا بیدار نیست. به تو چی؟ حرام گوشته به تو چی؟ این پیش من پرونده دارد. من خودم را موظف میدونم. تمام ما رو اغرب بیشه من پروند دارن تمام خیلصهای خطبی بیشه من پروند دارن من این را با دارم با علا دعبیر کرده اینا رو که به همه می دینیم حیبه که ما در روزی این اینار رو از تو بخواییم ما آبرو بخواییم شرف بخواییم عزت دو هیچ شد که پیش بزرگی بره در روزی این رفه دست خالی برد این روز عید فطر است. امیدواریم نظام ما رهبر ما جامعه ما دولت ما ملت ما جوانهای ما دخترای ما پسران ما فرد فرد این ملت و مملکت مشمول این عدیهی باشه که نه بار با خدا زجه زدیدیم از خدا قاستیم. عوض بالله الله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو احر. الله احرد الله اصلا لم یلد و لم یولد و یکن له اکو و الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيء وخاتبهم وأفزلهم محمد الله <تصفيق> الله وآهل بيته الأسيابين الأنجابين سيء مبغية الله في العالمين بهم نتبلعوا بالأعداء وهم نتبرعوا إلى الله اللهم صلى الله وسلم على علي أمير المؤمنين وسير رسول العالمين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن بن علي للمشتبة وحسين بن علي الشهيد بكربلا وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن مصعب بن جعفرين وعلي بن موسى محمد بن علي بن بن محمد والحسن بن عليا والهجة ابن الحسن الغاوي الى المنتظر المهدي صلواتك عليه وعليهم اجمعين بهم النسب الله من اعضاءه النسب الى الله تقوای الهی بهترین ذخیره برای دنیا و آخرت است در قرآن مجیز ذات عقدت اله فرمود هیچ انسان با تقوی نمی ماند. ممکن نیست کسی در زندگیش حلال و حلام خدا را رعایت کرده باشد راه نرفته یک راه کسی را نبسته دو در صدد رزی حلال باشد هیچ ممکن نیست که او در زندگی بماند من یاطرقلله یاج الله و مخررج و یزوقم هیچ جورا یاده. ممکن است یه زندگی گاهی کم بیاد یه مختری امتحان ب بلوله هم به حسنات بس بالخیر نبللو کن به شررحبل این امتحان ها باشد اما هیچ ممکن نیست یک مؤمنی در زندگی بمانه. این سریه قرآن است من یتق الله یجعل له مخرجا هر جا دیدید خدای ناشرد ما مندیم معلوم شد یا بیراها رفتیم یا راه کسی را بستید با حرام ممکن است کسی بتوان از زندگی حلال و آبرومند داشته باشه هر و من اصلق من الله قیلا از خدا راستوتر است او خودش حق محض است صد و صرف است این در طور مارک تلاف همون دومن یتق الله یجال لهو مخرجا و یرزقه من حیصله و یحتسب روزی یک انسان متقی را خدا مبهدانه تأمین می کنن که او پیشبینی نکرده او را اداره می کنن. پس هر وقت خدای ناشده ما مندیم منمشه کار و مشکل داریم یا بیجا خواستیم یا بیجا رفتیم یا قلب کسی رو شکندیم یا راه کسی رو بستیم یا خیال بکنیم خدای از راه حرام و رشبه و روی میزی و زیر میزی و هم زاری زندگی تامین می شود. از خدا راست ترکیز فرمود هیچ ممکن نیست کسی با تقبا بخواه زندگی کنه و بمانه البته کم و زیاد دارد خوب زندگی، ولی آبرو محفوظ اصی زندگی محفوظ. و برای حوزه های علمی و دانشگاه ها گذشته از اون وعده عمومی فرمود انتتقالله یجل لکن فرغانا، خیلی از مطالب دقیق علمی است که در کتاب ها نیست. دفعتاً در درون انسان و قلب انسان، شکوه ها می شود شما می بینید خب حابتون باغدارید الحمدلله این باغ را دو جور شما آبیاری میکنید یه وقتی از این چشمه ها آب میاد خب همه از این نهر استفاده میکنن برای درختانشون بعضی ها این فیز هست که چشمه از تو باغشون در میاد مثلا چشمه جلوی مسجد این لوله‌کشی نیست از جایی این چشمه از دل این ها جوشید درآمد خدا فرمود من دو جور ها شما رو تأمین می‌کنه یه وقتی راه عمومی است یه وقت فرمود این تتقو الله یجعل لکم فرغان فرغان اون قدرتیه که فرق بگذارد بین حق و باطل، صد و کذب، خیر و شر، حسن و قب مینا فرق بذاره فرمود این شمش درون شما میجوشه از راحت دیگه. اگر کسی یه چشمی از درون باغش باشه دیگه مشکلی ندارد. اگر یه کسی معرفت از درون او دیگه مشکلی ندارد. همیشه راحت دیگه. فمود کار تغوا اینه. من یتق الله يجأ الله مخرج اونجا فمی‌نن تقبل الله يجأ لكم فرغانا آنچه که مناسبت روز است دنیای ما تشنه آن است وحدت است، این نماز ایده قربان و همچنین نماز ایده فد نه بار به ما گفتند عیمه دستور دادند، بگیم این روز روز جهانی است. اگر بیگانه میگذاشت، دشمن میگذاشت، اسلام ناب معرفی می اون اونطوری که اهل بیت معرفی کردن، ما اهل سلفی داشتیم، نه تکفیری داشتیم، دواعشی داشتیم، نار سعودی داشتیم. اما جل تحول المسلمینه ایدا. خب اون روزها به اسم می توانست در خود مکه این براءت از مشرکین رو برپا کنه اما حالا مجبور بره تو شادرهای عرفات در مدار بسته ای بگه مرگ بر آمریکا بگه مرگ بر اسرائیل اینا اعدا به جامعه اسلامی هستن حالا ما 70 میلیون رزق میکنیم ولی تا 100 میلیون که گفتن که همین امریکا ها اینا کشتن در جنگ جهانی اول و دوم دیگه اون روز جمعیت مگر چقدر بود در صد سال قبل حد اقل از هفتاد ملیون که کسی که نقل کمتر نقل نشد. دیگه همین امریکای کشت هم دیگر. اینا یه سری رستایه بودن که وحشی بودن. اون طرف آب یعنی اون طرف دریا. این کریستوف گروم اگر این امریکایی ها را کشت نکرده بود که کسی از آمریکا خبر نداشت که. این رستایه های وحشی بعد از این که کرستوف قروم او را کش کرد کم کم جمعیتی از آسیا و اروپا اینا رفتن شده آمریکا. اصله هم به دستش افتاد این میلیون ها نبر کشتی. الان جنگ نیابتی دارن هر جا. اگه یمن هست اگه ایراق هست اگه سوریه است، اگه میمار است، جاهای دیگر همین دستین داره کن. خب هفتاد میلیون کم نیست. شما تاریخ جنگ جهانی اول دوم هیچ کس از هفتاد میلیون نمکن. 70 میلیون رو خواه الان هم اصلهت اگر می گذاشتن که این حرف های اهلویت مشخص بشه که ما با هم بشهریم زندگی داریم، که جنگ اصلا برای چی هست؟ این آدم کشوها برای چی هست؟ فرمود اینها چون از مرز انسانیت فاصله گرفتن به جن هم افتادن، جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ایدام وحدت اسلامی نشاط اسلامی عید اسلامی برکت مال یک ملت دو ملت نیست لذا این نماز با این تشریفاتی گفته میشه در زمانی که امام حضور و ظهور دارد واجب است تا جامعه بشری بشه یکی خصوصیت های قومی و گراش های امثال اینو سر سرجا خودش اما اون مکتب بشه یکی اون مرام بشه یکی اون انسانیت بشه یکی جهل تهول المسلمین ایدا وقت چون پیغمبر علیه ورعالهی آلا و تقدی و سنای را آورده برای اون زخرو شرف و کرامت و امثال زالک است مسئله رابطه خلق با خدا و خدا با خلق تو همین بحثا روشن شد. مسئله رابطه انسان ها با هم در نماز اید فیض اونجا فرمود قد افله من زکاها و قد خواب من دستاها و قد افله من تزکا و زکر اسم ربیه فسلات تو سوره بارکه اعلا که در رکعت اول خونده شد در اونجا راجب نماز اید فیض است که فرمود نماز رابطه شما با خدا رو درست می کند زکات رابطه شما را با خلق خدا درست می کند قد افل همن تزکا و زکر اسم ربی فسل دار. در باره نماز اید قربان فرمود فسل لرب که ونهر نماز را اقام کن تا با خدا رابطه داشته باشی. قربانی را اقام کن تا با خلق خدا رابطه داشته باشید فیلی ها هستن که نیازی به این گوش ندارن اما یک وحدت اسلامی ایجاد میکنند وقتی شما یه مقدار گوشت قربانی را که به قصد قربت قرد کردید با احترام دارید به همسایتون میدید این یک الگهی پیدا میشود از قربانی را قربانی گفته برای این که آمله تقربه با خداست نماز قربانی از صلات و قربانو کل تقییه درباره نماز آمده است که هر وقت کسی به مهراب عبادت است داره قربانی بکند چون قربانی مایه تقرب و بحیل عبدومی در مولا این قربانی است و خود اون زب کردن یا نهر کردن بالاختصاص قربانی است تقربه به خدا است این نیست که حالا همسایی ها اگه امروز گوش ندیدن آسیب ببینن که به ما گفتن فسل لرب که و انحر اگر نهر به شطر نبود گوسفند هم درباره زکات فطر روز عیده فطر گفتند که ذکر است مرب بهفسد هم تزکیه هم زکات هم نماز برای اینکه یکی رابطه خلق و خدا رو تامین میکنن دیگری رابطه خلق ها رو تامین میکنن هم درباره عید قربان سر بودند به اینکه وعنه هر هم این قربان قربانی بکن این کسی را فقیر نمی کند بذارید هر جای که ما زندگی می تو این کوچه و پس کوچه این بچه ها این مردها، این زن ها ببینند. یک کسی گوش داره هم برای همسایش میبره. چیه قربانیه اینا سنت خداست یک کسی آمده چهارشنبه سوری را باب کرده که نه اصلی دارد نه فرعی دارد خطرات فراوانی دارد او هنوز فراموش سرام اما این تعبیر لطیف جناب سعدی خلیل من همه بطه های آزری به شکست این خلیل این سنت برای ما آورده. بیدید با این سنت ابراهیمی زندگی کنیم. اینا خیلی ممکنه کسی تو جشن آتفا اینا شرکت کند ولی اون دستور اساسی. شما الان عنوان کمک عاطفی دادید خدا قبول بکند اما قربانی جور نیست فقط مثل نماز دیگه. نماز رو بدون قصد قربت که نمیشه خوند که قربانه همینطوره قربتن لله عبادت دیگه اون دای مخصوص هم که خب مستحب با بخونه اینا سنت‌های الهی است و این سنت‌های الهی جامعه را ترقیم میکند نظام را حفظ میکند رابطه خلق را به هم حفظ میکند می, کند. می الان اگر یک کسی یک مختصر گوش خدمت شما آوردن و یقینا یقیناً احتیاجی او نداری ولی بله خیلی خوشحال میشی بگید این قربانیست همه ما از اعضای منظر با دردش استفاده کن این رابطه جامعه را نسبت تو هم تحکیم میکند نسبت به دیگر مهرونتر میکند ما را مشمول دعای خیر خلیل حق و زبیه حق میکند اینو سنت های الهی است امیدواریم که هر کسی تا الان موفق شد که معفقش نشد شد اگرم نشد بعد بتواند جبران بکند. پس این نمازی اید چه در نمازی اید چه نمازی در قربان نماز وحدت جهان اسلامی است که جعل تحول المسلمی ایدا. ایده. اگر می گذاشت اون استکبار که این دین الهی رواج پیدا کند ما دیگه نزد داعشی داشتیم نزد داشتیم هیچ برادر مسلمان نسبت به هم اسلحه نمی این مال اون است. هم دین ما محفوظ بود الان شما می‌بینید بودجه کشورها مشخص است بیشترین بودجه کشورهای ابرقدرت صرف وسیله آدم کشی است دیگه الان که مخفی نیست که بودجه های کشورها مشخص است دیگه. اون کارخونه های اصلحسزی شب شباز روز داره کار میکنه و توفنگ و گلوله دیگه. خدا کم خل نکرده منطقه این که بینید این همه فقیل تو ما آلم ما برای که سه همه گرفتن برای ساختن نسله های آدم کشی کم کارخونه ای تو غرب نیست سشیفته داره کار میکنه برای ساخته اصله های آدم کشی که اینا باد آدم بشن چی اینا رو میتونه آدم بکنه خب اگر واقعا کشتر آدم میکرد جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم این جنگ های نیابتی به آدم میکرد دیگه یه چیز عدم میشنود 70 میلیون خب خود محققین اینا میگن 100 میلیون دیگه در مدت کوتاهی بالاخر 100 میلیون رو کشتن به چیزی ها جایی نرسی. مگر با خون ریزی و وحشت و حیوانیت جامعه بسلاح میشه الان این طور که بوجه های کشور ممکنه بعض از بوجه ها سری باشه ولی اون بوجه های علنی یه وقتی وجود وارک معصوم نگاه کردی برزی است مایک از کارمندان بود تا بود بد در ان تخره این پول ها گردن کشی می کند میها سرکششی میکنه هم سرکشی کرد. شما تا کی رو ذخیره کردی تو خونه ها اون پول هایی که گرفتی اینا میگن من باید بیام بیرون آمده بیرون دیگه. این قصدرک کدی، این برج کدی، دی از کارمندان بود. و ابت دراهمو الا ان تخرج اعناقها پولا بالاخره تو خونه نمیمونه یا گردن میکشه سر میکشه خودش نشون میده خودش نشون خب با اینا دیگه نشد اداره نکردنگ کشف نکردنگ بنابراین با کشتن با ساختن اینا اینجور نمیشه و وجود وجود مبارکه ولی ارواح و نافدا که ظهور میکند به جهان را الانم ظهور بکند این هفت میلیارد آدم میکند من هر وقت فکر میکنم متحیرم حضرت با کشتن که جامعه را میکند خیلی کم در زمان حضرت در اصل تغیانگری آسیب میبیند چه کار میکند چه جور میشود البته دست قیبی خدای سبحان است دست نورانیه ولی از به برکت عنایت الهی است که روی سرهای مردم گذاشته تکم تک و روبهی احلام و مردم میشن عاقل اگر مردم عاقل شده الان اداره این هفت میلیار میلیارد قلاسونه حضرت هم 313 نفر اصحاب و نماینده مثل امام دارد خب یه امام آمده یه منطقه وسیع رو منقلب کرده دیگه حالا سی, سی شاگرد مثل امام داشته باشه و با اقلانیت جامعه رو متقبل کنه خیلی آسانه. چیجوره هر وقت من در باری حضرت فکر میکنم واقع متحیره. خب شما 7 میلیارد چیجوری بخواست دار کنید؟ ملحد فراوان داره، مشرک فراوان داره، کمونیست فراوان داره، مارسیست فراوان داره. وقتی عقل کامل بشه خب یه دیگه یه معبوده دیگه یه هده دیگه برای ما وقتی ثابت بشه ما از پوس به در می آییم نبی پوسیم حل برای ما خیلی آخیال خیال میکنن این سیبی که از درخت می میپوسه تموم می شه. اینا می تو این چاله به نام قبل تموم شده است این نمی که بدن می ولی انسان از پوست به در می آید و هست و هست و هست و هست <تصفيق> یعنی چی؟ خب ما ایما ما دیگر اگر خدای ناکرده مرگ پوسیدن بود مشکلی نداشتیم چه بچه چه خوب فرمود شما اید و عبدیتتون یه میلیون سال نیست تا بگی حالا ما زندان انفرادی یا یه میلیان و یه میلیارد و صد میلیارد اینا نیست. ما هستیم که هستیم. خب اگر ما ابدی هستیم با چکر عبد کالای عبد طرز عبادت عبادت عبادت. داشته باشیم. اینه که تو این نمازهای اید قربان اید فیض این دوتا سوره که خونده میشه این نه قنوطی خونده میشه این رو به ما یاد میدن. و هر کدام شما الان که از خانه خدا به خانه خودتون که اون هم خانه خداست می روید انشاءالله سعی کنید با دست پر بروید به جد از خدا بخواهید که ما آمدیم و با دست خالی بر نمید. به جد بخواهید یک قدم برخیشتن به بلکه دوست برنامه از این بهتر که ما گفتن جامعه بشری با هم یک و اهل بید علیه مسلم خیرات فراوانی دارن شما بخواهید خدا یا اون چرا که به اهل بید دادی به ما هم بده کم خواسته نیست کم ایدی نیست خدا یا اون چرا به علی دادی به ما هم بده کم خواسته نیست اون چرا به حسین دادی به ما هم بده اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه اهل و واخرجنا من كل سوء اخرجته منه اهل بيت کم خواسته ای نیست ما چیز کوچیک از خدا نخواستی و هیچ ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشود و خالی برگرده امیدواریم همه شما با ایدی های گرفته به بندالاتو بروید و تمام کسانی که در سراسر جهان اسلام با خدای خود زمزمی داشتن ایدی خود را از خدا بگیرن با امید اون روزی که جامعه بشری جامعه متحد بشود. با امید اون روزی که مسلحه سلاح‌های آدم کشی رخت بندد. با امید اون روزی که در جهان جز صلح و وفا و صفا و چیز حکومت نکند به امید اون روزی که صاحبمون و ولیگمون و بالای سرمون بیاید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله له أحد الله صحيحا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهبا أحد صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته